میله یا معمننی غاحم به نام خداوندی به اندزمرببان نهایت بارش سوال کنندنده ای از اعذابی پرسید که حتمی واقع شده نیست عذابی که برای کافران آماده شده است و هیچ دفع کنندنده ای ندارد عذابی که از جانب خودای صاحب مرتبه های بلند است برشتگان و روح و سوی او بالا میروند. در روزی که مقدار آن پنجاه هزار سال است پس صبر نما صبری نیکو بگمان آنها آن روز را دور می پندارند ولی ما آن را نزدیک می بینیم روزی که آسمان چون فلزی گداخته گردند و کوها چون پشم رنگین متلاشی می گردند و هیچ دوست غمخار از حال دوست غمخار نمی پرسد در حالی که یک را می مجرم آرزو می کند که فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدیه بدهد همسر خود برادر خود و دیکانی که او را پناه می دادند و حتی همه کسانی را که در روی زمین هستند به حیث تاوان بدهد تا باشد که آنها او را از عذاب آن روز نجات دهند نه هرگز چنین نمی شود این آتش شغل که پوست دست و پارا را و کسی را که از حق رو گردانیده و اعراز می کرد فرا می خاند. و نیز کسی را که سروت می تو و باز خیره می کرد بگمان انسان ناشه با و حری سافریده شده چون شری با او برسد ناله و زاری و بیتابی بیکننده است و چون خیری با او برسد شدیدن بازدارنده است مگر نمازگزاران آنانی که بر نماز خود مداومت ورزیدهاند و آنانی که در اموالشان حق معلومی است برای سوالگر و محروم یعنی کمروزی و آنانی که روز جزا را باور دارند و آنانی که از عذاب پروردگارشان بیمناکند واکن عذاب پروردگارشان غیر قابل ایمینیست و آنانی که از آمیزش جنسی خودداری می کنند مگر با زنان خیش یا زنانی که مالک آنها هستند ایشان با این عمل خیش ملامت نیستند پس کسانی که جز این بازن دیگری بخواهند آمیزش جنسی کنند هم ایشانند تجاوزگر. و کسانی که امانتها و پیمانهای زمه خیش را رعایت می کنند و آنانی که به گوایی هایشان استوارن و آنانی که بر نماز خود پاسدارن هم ایشانن در باقیستانها به با عزت بسر میبرن پس چی شده است کافران را که به سوی تو از راست و چپ روح بروح میشه تابند؟ آیا هر یک از ایشان تم دارد که در بهشت سرشار از نعمت داخل کرده شود؟ هرگز نه بگمان ایشان را از آنچه خود می دانند آفریده ایم پس قسم به پروردگار تلوگاهها و غروبگاه ها که ما یقینا تواناییم بر اینکه بهتر از ایشان را به جایشان آوریم و هرگز کسی بر ما پیشی گرفتن نمی تواند پس ایشان را بگذار تا در گفتار باطل فرو روند و بازی کنند تا آنکه بر به روزی که برایشان وعده شده است روبرو او روزی که از گورها شتابان برایند گوی ایشان بسوی شاخصهای نسب شده میدوند در حالی که چشمان ایشان پایان افتیده و از زلط سراپای را فرا گرفته این همان روزی است که با ایشان وعده شده بود